سلام سلام آقا، خوش آمدید، بفرمایید از این اصل میل کنید متشکرم، شما خودتان اصل تولید میکنید؟ بله، ما بیشتر از دیویز کندو داریم و انواع اصل تولید میکنیم چرا رنگ این اصل متفاوت است؟ این اصل از گل های مختلف تهیه شده است مثلا این اصل آویشن است، آن اصل گل های جنگلی است این شیشه کوچک هم اصل گلهای کوهیست پس رنگ اصلها به خاطر نوع گلها تغییر می کند بله اصل داروی دردهای مختلف است اصل بخورید تا جوان بمانید یعنی با خوردن اصل پیر نمی شویم؟ ابن سینا در کتاب قانون نوشته است اصل جوانی را طولانی، حافظه را قوی و درد را برطرف می کند پس دو ظرف اصل خوب بدهید شاید برای همیشه جوان بمانیم